آوای فرهنگ شهر ما فرهنگ شهریان جامعه و حکومت را بر پایه قداست جان کرکان فرهنگی را نیست بنا کنیم فرهنگ شهر آوا و آرمان مردم آزاده و فرهنگ دوست سرزمین احورایی فرهنگ شهر حکومت و جامعه را بر شالوده فرهنگ ایران زمین می خواهد. فرهنگ شهر آشیانه و آلمان شهر سیمرغی بر فراز است. فرهنگ شهر بهشت جمشیدی بر روی زمین و شهریوری است که زرتوش پیامبر بزرگ ما اون را آرمان خود میدانست. آوای فرهنگ شهر بازوی توانمند گنگینه فرهنگی تاریخی ایران برای حاکمیت بخشیدن به مردم و مردمی سالاری کردن جامعه ایرانی فرهنگ شهر راه پتپراز و نشیب هفتخان رستم به سوی نوزایش فرهنگی و رونسانس ایران زنین است که هم درباره این صحبت بکنم که چرا خدای مولوی ساقی و مطرب است ها و اصطلاحات در روان و فکر ما یک گراه نگاهی دارند که ما متوجه آن نیستیم ولی این گراه نگاهی و اصطلاحات سبب میشود که ما نه از فرهنگ ایران چیزی میفهمیم و نه از اندیشه های مولوی و طبعا نه از پیوند این دوتا با هم وقتی دم از ساغی و مطرب زده میشود وقتی دم از میفروش و موسیقی نواز زده میشود ما آن را از کتاب مقدسی مانند قرآن جدا میسازیم مسجد جایگاه میفروشی و مینوشی و موسیقی و رقص نیست مسجد و کلیسا و کنیسه جایگاه تعظیم است انسان باید احساس عظمت یهو و پدر آسمانی و الله را بکند. ساغی و مطرب و بزم و جشن جایگاه سمیمیت و خودمانی شدن و آمیختگی و برابری و تار و فوت شدن است این است که برای ما اون ویژگی محال است که محال از ساغی و مطرب داشته باشند ویژگی الهی و قداست است که مورد تعظیم است ولی برای ورود در فرهنگ ایران و شناخت خدای ایران و شناخت روابط انسان با خدای ایران باید به کلی از این اندیشه گذشت که خدا را از عظمتش از حیبتش از قهاریتش از غضبش از انتقامگیریش از قدرت شکنجگریش میتوان شناخت خدای ایرانی اهل رحم کردن هم نیست چون رحم کردن هم صفت یک مرد مقتدر است یک مرد مقتدر است که رحم می کند خدای مه رحم نمی کند تا تصویر الهانه ادیان ابراهیمی در ذهن ما جا افتاده ما نمی توانیم فرهنگ ایران را دریابیم و راه خود را با داشتن این تصاویر در ناخودآگاهمان ما به فرهنگ ایران بسته این است که برای یافتن فرهنگ ایران نیاز به نیروی گسستن از تصویر اله از تصویر عله در یهودیت و مسیحیت و اسلام داریم خدا درست در فرهنگ ایران و در غزلیات مولوی ساقی و مطرب است ما ساقی و مطرب را از دریچه این عیان می‌بینیم از این رو به شگفت میفتیم که ایرانیان چقدر جاهل و عقب افتاده بودند که ساقی و مطرب را به خدایی خود برگزیده بودند آری رام خدای نینواز که همان زهره باشد هم نینواز و موسیقی زن و چنگ زن بود و هم ساغی بود و هم مادرش سیمور که نامهای دیگرش خرم و فرخ و مشتری باشد این حد و خیشکاری را داشتن همین خدایان که بنیاد دین و فرهنگ ایران بودند سپس به جهان شعر و ادبیات ما تبیید شدند و در آنجا در جهان تشبیهات شاعرانه گم شدهاند و ساوی شراب روحانی و مطرب آهنگ معنوی شدند. آنجا وجودشان جزو تشبیهات ساختگی و جعلی شوورا شده است ظهره و مشتری و ماه به مقولات شاعرانه به خیالات شاعرانه کاسته شدند. اکنون هنگام آن است که این خدایان اثر از این تبعید و مترودیت هزارها باز و از سر گرانیگاه زندگی و اجتماع ما گردن از سر م... معنای ژرف ساغی بودن و معنای ژرف مطرب بودن را باید دریابیم و دریابیم که اینها معنای زندگی و بینش ما هستند برای همین خاطر است که روی کردن نوین به غذلیات عطار و مولوی و حافظ و سعدی و عراقی ضروری است های دین اسید و فرهنگ ایران در همانجاست ولو با اصطلاحات اسلامی آلوده شدند که ضرورت و فشار زمان و برندگی تیغ اسلام برگردرشان آنان را ناگزیر میکرد ما در ادبیات خود اغلب از ظهره زهره چنگ نواز یا ارقنون زن میشنه و زهره, زهره نوازنده موسیقی موسیقی زهره نینواز است و به ندرت از زهره ساغی سخن میرود البته ساغی در اصل به معنای آبدهنده است کسیست که تشنگی را پرو می نشاند آبدار است و سپس به معنای شرابدار و شراپیما و اون که می در ساغر حریفان می افگرافت به کار برده شده است و از رسوم مردم ایران آن بوده است که پیاله بر سفره نمیگذاردند بلکه به دست گرفته میگردانیدند ولی در فرهنگ ایران نواختن ابزار موسیقی و پیمودن شراب ویا و یا ابشوری گیاه و میوه ها مانند آب انار و یا شیر همیشه به هم پیوسته بودند خدا سیمور که به هست هم می نوازد نی هم می نوازد و هم افشوره و شیره دارد یعنی یعنی هم مطرب است و هم ساقی به عبارت دیگر گوهر جهان جوان، چون که از این نایبه همه جهان آفریده می شود گوهر جهان هم آهنگ و موسیقی است و هم شیره و اپشوره و باده و این دو با هم آمیختن از این رو زهره یا رام هم نوازنده موسیقی است و هم پیماینده نوشابه و باده و آبکار است اصلا واژه آبکار هم معنای آبیار داشته است و هم به معنای میگسار و میفروش و شرابکار بوده است چون آب در فرهنگ ایران معنای یک سویه و تنگ امروزه را نداشت آب شیره و افشوره هر جانی در جهان بود است در بندهش 17 گونه آب شمرده می شود شیره گیاهی آب بود خون هم آب بود شیر گاو و گوسفند هم آب بود نطفه هم آب بود عشق و عرق هم آب بود روغن گیاهان و جانوران هم می شد. آب به طور کلی شیر یا عشیر یا عشای همه جهان بود و انسان که مردم خانده می شود در یک تصویر چنانچه از خود واجی مردم دیده می شود مر, مر، تخمه مر تخمه دیده می شود تخم بود مر، انسان تخم بود طبعا انسان که تخمه است آبیاری که می شود شروع به روحیدن و ثبت شدن می توخ پدیدار می شود، روشن می شود، دیدنی می شود و ایجاد بینش می کند. از ویجگی، ویجگی آبطری و آمیختن بود. تری همه آبها، یعنی شیره همه جهان، یعنی گوهر آبکی جهان آمیزنده بود، یعنی عشق بود. تر شدن آمیختن بود. تری اصل آمیزش بود. اساسا واژه مهر نیترا که از ریشه متر است هم ریشه با واژه آمیختن است و عشق که ما امروز عشق میگیم عشق هم که عشق باشد همون عشا و شیره است این است که میبینیم باده در اشعار مولوی اصل عشق است البته شیره و شیره انار شیره نی و شیره انار هم اصل عشق بود هر چیز آبکی باده و انگیزنده بود این نوشابه همه دوییها را در آمیختن یگانه میکرد اینها همه در اشعار مولوی باقی مونده است به عبارت دیگر آب یا شیره جهان دو ویژگی یا تو دو صفت به هم چسبیده داشت هم روشن میکرد هم میآمیخت بدینسان در فرهنگ ایران خرد و عشق اون چه روکر خرد است اون به هم میامی می زد اشق است خرد و عشق در پرهنگ ایران با هم از یک سرچشمن شناختن که همون شنا کردن باشد گودر کردن مردم یعنی تخم از آب واقعیات و تجربیات بود و در این عبور از جریان ورود واقعیات و تجربیات از تخم انسان یعنی انسان وقتی از این رود واقعیات و تجربیات رد می شود از تخم انسان از وجود انسان که در فرهنگ ایران دارای چهار تخم بود و یک بار درباره اون سخن خواهد رفت همزمان با هم خرد و عشق می رویدند امروز ما در قرق می بینیم که عقل به کلی برای دری از مفهوم عشق است عقل باید سرد و خشک باشد ابجکتیو باشد بدون اواطف باشد باید فقط دنبال بردن و قلبه باشد باید همه ارزش‌های انسانی از آن حذف کردن این اوج علم است آنگاه چنین عقلی واقعیت جهان را میبیند در میابد. به سخن دیگر با عقل اندیشیدن که راسیونالیته در باختر باشد معیار درستی اندیشه را حذف عشق و مهر و احساسات و عواطف از جهان میداند فرهنگ ایران درست نقطه مقابل این اندیشه است در فرهنگ ایران خرد در فرهنگ ایران خرد و مهر از هم جدا ناپذیرند اندیشیدن و مهر مهرورزیدن با همند هم گوهرند این است که وقتی سخن از زهره ساوی یا رام می گسار میرود بحث جرفتری در میان است دل پردرد من امشب بنوشیده است یک دردی از آنچه زهره ساغی بیاوردش رهاوردی چه زهره داغرد و یارا چه خواب آورد حشر ما را یعنی برانگیختی ما را چه خواب ما را ما را تبدیل به خواب بکند که امشب می نماید عشق بر اوشاق پامردی. دلا میگرد چون به یعنی پیاده در شطرن به گرد خانه اون شه به ترس از مات و از قایم چون نطع عشق گستردی این زهره ساغی تنها عشق و موسیقی و طلب نمی آورد بلکه با همون سقایش آبیاریش با همون آبکاریش روشنی و بینش هم می آورد با آمدن ادیان نوری و ابراهیمی الہان و خدا الهان و خدایان اشخاص بودند فاعل و کننده بودند ولی انتقال این اندیشه به فرهنگ ایران به کلی غلط است مثلا نخستین روز هرمای را مردم در ایران جشن ساز می‌خوندند یک شخصی که زمان را با ساختن جشن آغاز می کند. او فطرت زمان و جهان را از جشن می سازند. اینجا یک کننده عامل یا فائل تصور می شود ولی خدای ایران تنها جشن ساز نبود بلکه خود جشن هم بود خودش همون جشن بود خودش نوای نی بود خودش سرود نی بود خدای ایران نامش خرم بود رخ بود شاد بود خودش اصل خرمی و شادی و فرخی بود خودش خرمی و فروخی و شادی بود اهل فارس بنابر ابوریحان بیرونی به نخستین روز ماه خرم جدا میگفتند یعنی سمق و انگم یا شیره خرم خارازمیه ها و سغدی ها همین روز را ری، رینجادا میگفتند یعنی شیره و عبشوره نای پترس و گوهر جهان و زمان و زندگی شیره خورن شیره نیست خدا آب و تریس از این رو نام سیمرغ آوه بود مهراب یعنی مهرابه روداوه یعنی فرزند آوه سهراب سوراوه سوراوه کردها به, به گل بوسان افروز میگویند که گل سیمرغ است سیمرگ و دخترش رام خودشان باوده و شیره انگور و شیره انار هستند خود یعنی چی یعنی خودشان اصل آمیزشان سرود بارباد برای روز 28م که بنابر اهل فارس روز رامجیت یعنی همون زهرا است این سرود نامش باده نوشین یا نوشین باده است یعنی چی؟ یعنی باده بوده است خدا باده بوده است این نام زهره درست درست همون واجه است که در پهلوی آب زهر میگوین رام هم آهنگ و نواز و هم اپشوره و آب است نخستین پدیده در جهان سرود و آهنگ و افشوره و آب و باده است و اینها نخستین زایش از سی هم هنوز هم زردوشتیان این آین باستانی و زن خدایی را نگاه داشتند. فقط پیوند این آب را با رام و و رام را با موسیقی و باده حذف و ترت کردن آب نیازی نیازیست است که به آب می دهند و آب زهر عبارت از چیز؟ عبارت از آ... آمیخته مایعات یکی شیر یکی شیره گیاه هوم که در اصل البته نی بوده شیره نی افشوره نی بوده ولی زردوشت یا گیاهی دیگر جانشین آن ساختند و سیوم آب انار که برای نیرو بخشیدن به آب یعنی به کل جوهر جان ها تقدیم می شده است البته آب که اصل سر... تریست چنان آمد نماد آمیزش و عشق هست ظهر تنها ریختن این مای در آب نیست بلکه صبح چهارم پس از مرگ هر کسی پی, پی دنبه یا چربی گوسند را با آتش بهرام میدهند البته پی که متناظر با آبدینه بوده است این همانی با چشم دارد چشم را میگفتن پی هست با روغن در گذشته چراغ روشن میکردند فطیلهای در روغن میگذارند تا آن را رو روشن کنند. این است که در کردی رون هم به معنای روغن و هم به معنای روشن است البته رون معانی آشکار و شفاف و شادمانی را هم دارد رونایی روشنایی است روناندن روشن کردن است و به دید چشم رونکاچاو میگویند چاو همون کلمه شاو انگلیسی و شاو آلمانیس آنشاون و به تماشا کردن و نگاه کردن رونین میگویند این رابطی پیه و روغم با روشنی و بینش همون پیوند رام یا زهره را با بینش و شناخت نشان میدهد رام یا زهره هم خدای رقص و شعر و موسیقی است و هم خدای شناخت و هم خدای عشق و زیبایی البته زشت سازی و تباهسازی نام این خدایان جزو اقدامات عادی و متداول آن زمان بوده است خدایان دیگر که می شروع می به زشتسازی این نامها. ها دایه و دی دیو می شده است و زهر زهر می شده است ظهره زهر می اغلب هست و فخشای کنونی ما همون زشتسازی و کسیبسازی نام این خدایان باستانی ماست در این مایعات سگانه که شیره و افشاره هم یانی و آب انار باشند نماد سزن خدا بودن شیر نماد گاو یا جانداران بی آزار و مقدس بودن که هم نماد زمین است و هم نماد ما ابشوری هم نماد سیمرغ بود و آب انار نماد زهره یا رام بود در گذشته در دوره زن خدایی به انار رومانا میگفتند سپس همین واژه به عربی رفته در عربی به انار رمان اللوفان گفتند رمان به جای روحمون رومانا و اللوفان همون واژه لوف و لاو است در فارسی که به همزاد اولیه، به عشق نخستین، به اصل عشق گفتن که در انگلیسی همون واژه لا باشد. همین واژه است که در اروپا امروزه به داستانهای عشقی میگویند. انار شیرین بیدانه را املیس میگویند. اب ابلیس درست ای است که همسایه و هم معنای با این است. چون های انار در یک پوست بود نشان افراد به هم پیوسته نشان همبستگی اجتماعی بود رام خدای مدنیت ساز خدای شهرساز بود این انار یکی از نیوه های بود که نمادهای فرهنگ ایران بود که این رام خدای شهرساز بود همه را یعنی اجتماع را مرند داناهایی که یک شهت و شیره دارند با هم جمع میکرد این بود که میبینیم اون چه در حدوارش رومان هست یعنی انار در پهلوی آن را امک امک یعنی همه همون کلمه و کلا یعنی کل که جا اینها جای آن شده است. رام با موسیقی و باده همه را جمع میکرد و هماهنگ می‌ساخت و هم بسته میساخت یعنی چی؟ یعنی موسیقی اساس اجتماعسازی سازی بوده است این مفاهیم و معانی چه در قضلیات مولوی؟ در قدریات مولوی میماند این دو صفت و ویژگی را این دو صفت و ویژگی رام و که موسیقی یا آهنگ و باده یا نوشابه باشد هر دو هماغوش هم بودند مثلا موسیقی انسان را آبیاری میکرد موسیقی کار سقایی و کار ساغی را میکرد ای چنگ یا از راه خوشنوایی تشن دلان خود را کردید و سقایی جان تشنه عبد شد وین تشنگی زهد شد یا ضربت جدایی یا شربت عطایی ای زهره مزین زین هر دو یک نوازن یا پرده رهاوی یا پرده رهایی، گرچنگ تج نوازی در چنگ غم دازی خوشتن نوا اگر نه مردی ز بینوایی خوشتن نوا اگر نه مردی ز بینوایی از نداشتن نوا و موسیقی انسان و خدا می ما واژه بینوایی را امروزه برای تنگ دستی و فقر مالی و, و مادی به کار میبریم ولی این واژه به ویژه نشان میدهد که فرهنگ ایرانی فخر و تنگ دستی را در نداشتن موسیقی و سرود و آهنگ میدانسته است نه در بیپولی و کمبود رفاه دنیوی موسیقی و سرود و جشن نداشتن برترین چونبختی ها بوده است به همین علت ملت در زمان بهرام گور از او شکایت می‌کنند که ما موسیقی نداریم و از این لحاظ در عذابیم بینواییم این است که بهرام دوازده هزار کوری از هندوستان به ایران میآورد تا این نقص را میان مردم بکاهد تا مردم تا مردم بینوا بانوا شوند موبدان زردشتی که پدران و نیای همین آخندها میباشند بر ضد موسیقی و سرود و طبعا بر ضد همین رام یا ظهره بودند این بود که سرود یا نوای نی را کار اهریمن میدانستند آری، من بود که سرود را دوست می داشت آنها میدانستند یعنی مردم میدانستند چرا سرود و نوا میخواهند چون ورود نوا در موسیقی معنای جرفی داشت. با نوا، با سرود، با جزم بود که انسان در پی به ساختن گیتی میرفت. این رام یا زهره بود که هر کجا گام میگذاشت به قول امروزیها سکولاریته میآمد. این زهره یا رام بود که با خودش آمیختگی خدا با انسان و گیتی را جمعی آورد چون نام روان انسان رام است نام روان انسان رام است در تحفیه حکیم مؤمن دیده می شود که روان نام انار است که همان رام باشد زهره یا رام خدای پراز آسمان نبود زهره مجموعه و کل روانهای انسانها بود یعنی روان روان انسان همون ظهره یا را، رام است این روان است که باده با نوشین است انسان با چنین روانی به جهان آمده است از این رو مولوی میگوید مرا چون ناف بر مستی بریدی یعنی مرا چون از فطرت مست ایجاد کردی زمنچه ساقیا دامن کشیدی چنین عشقی پدیداری به هردم ای چون ناپدیدی دو پیدا دو هلگن چونس پنهان زهی غفل و زهی این بیکلیدی این ظهره روان است که همیشه در انسان نیمی نوازد بیزارم از اون گوش بیزارم از اون گوش که آواز نی اشنود وانگاه نشد از خرد و دانش نائی واگاه نشد از خرد و دانش نائی جای دریغ است که انسان این سرود و سماع ظهره درون را بشنود و از خرد و دانش او آگاه نشود ببینید اینجا همه هر دو به هم پیوسته است هم خرد و دانش با سرود و سما مولوی این بانگ نای زهره درون یا روان را میشوند و رقص کنان میگوید من ترابم، تراب منم من تربم ترب منم ظهره زند نوای من عشق میان آشهان شیوه کند برای من عشق چو و خش شود بی و کشمکش شود پاش کند چو بی بر همگان هوای من یعنی چی؟ یعنی مستی با راستیست کسی که از واده رام مستود گوهر خود را آشکار می‌سازد. ساغی جان خوب رو باده دهد ساغی جان خوب رو باده دهد سبو سبو تا سر و پای گم کند زاهد مرتضاوی من خود همین روان انسان که زهره است همون ساغی و همون باده است که همیشه انسان را مست و همیشه انسان را با صفا و راسمنش و آزاد می سازد کسی که هر خود را آشکار می‌سازد، انسان آزاد است بعدش مولوی می‌گوید با، به همین دوره باده توی سبو منم باده توی سبو منم آب توی جو منم مست میان کومنم ساقی من سقای من از کفخیش جستم در تک خم نشستم تا همگی خدا بود خوم کات خدای من در جرفای خوم که معنای نی هم دارد خوم مثل خام معنای نی دارد در است خدا خدایی نشسته است که ساقی و مترب است و این من میخواهم تا این همگی این ساقی خدای من باشد روان انسان که رام یا زهره باشد بنابر گزیده های زاد برم نظام دهنده و هماهنگ سازنده نیروهای تن و جان بود با آهنگ و نوا سراسر وجود انسان را به اندام میکرد یعنی هماهنگ هنگ میکرد و فروهر یعنی پروهر که بخش دیگر زمیر است همون سیمرغ است که پیمانگر بود در بندهشت بخش هشتم پاره شست میبینیم که این ارتافرفت پیمانگر است رام که ظهر باشد و هر و هر که همون خورم یا مشتری یا سیمرغ باشند، دختر و مادر بودم که این همانی با نیروهای زمیر انسان داشتند. یکی را در عربی یکی را سعد ازقر و دیگری را سعد اکبر میخوانند اینها سرچشمه سعادت سرچشمه بینش سرچشمه اندازه سرچشمه جشن و شادی در گوهر انسان هستند. این مطرب جان که زهره و آن مشتری یا خرم باشد اینها در درون انسان می میسازند که نیایشگاه است و نیایشگاهی میسازند که جشگاه است خدایان ایرانی که ساغی و مطرب هستند مسجد و کلیسا و کنیسه برای تعظیم یهوه و پدر آسمانی و الله ندارند بلکه جشگاه دارند که در آغاز در مهر نامیده شد. آتشکده نام واقعی نیایشگاه ایرانی نیست بلکه در مهر نام اصلی نیایشگاه ایرانی و وقتی شریعت اسلام قدرت را در ایران رو بود خرابات و میکده نامیده شد همین جشنگاه میکده کده اساسا معنای کاریز دارد می یعنی سرچشمه می و می می اسم یکی از اسمهای می بگماز بوده است که در شاهنامه و در گرشاسنامه می آید بگ یعنی بگ ماز یعنی ما یعنی, یعنی زن خدای ما و این سیمر بود یعنی کسی که می می نوشد سیمر را می نوشد خرابات جای سیمر است این جشگاه بود که زندگی مقدس شمرده میشد و شاد ساختن جانها پرستش و نماز خوانده میشد در هضوارش به آنچه ما امروزه پرستش میگوییم و از آن تعظیم میفهمیم در فرهنگ ایران شادونیتن میگفتند یعنی چی یعنی شاد ساختن هر جانی پرستش است نه تعظیم به یک عبر قدرت در فراز آسمان از این گذشته پرستش در اصل به معنای پرستداری کردن است مولوی درباره مطربه جان که زهره است چنین می سراوید. که مشتری را که مادرش خرم یا سیمور باشد از شرخ فرو میخواند. ای مطرب جان تو دفت به دستا آید مطرب جان زهره است ای مطرب جان تو دفت به دست آمد این پردر زن که یار مست آمد چون چهره نمود اون بوت زیبا یعنی همون سیمور ماه هست توی چرخ بوت پرست آمد در راوت جهان به عشق آن خورشید، خورشید هم فروق یا سیمرغ گسترده پر بود در راوت جهان به عشق آن خورشید رقصان ز عدم به سوی هست آمد قمدین ز چهی؟ مگر تو را قولی از راه ببرد و هم آمد دون قول ببر بگیر سقراقی یعنی کوزه شرابی کن برکت عشق از قلص آمد. این پرده بزن یعنی این آهنگ را بزن این پرده بزن که مشتری از شرخ از بحر شکستگان به پست آمد. در حلقه این شکستگان گردید کن دولت و بغب در شکست آمد این اشرت و اش چون نماز آمد این اشرت و اش چون نماز آمد وین دردی دوردی درد آبدست آمد و یعنی آبدست نماز این اشرت و عیش اش چون نماز آمد وین این دوردی درد آبدست آمد خوب در این شعر دیده می شود که تجربه خدا برای ایرانی تجربه شادی و عیش بوده است یعنی از دیدن خدا انسان شاد و مسرور می شوده. یعنی شادی و سرور و عیش و رقص این همانی با نماز داشته است ایرانی برای نماز کردن رکو و سجود و قعود نداشته است نماز ایرانی خواندن سرود و شادی و رقص و شنیدن موسیقی بوده است این است که نیایشگاه خدایان ایران خرابات یا در مهر بوده است خدای ایرانی ابرقدرت نبوده است که تعظیم بشود خدای ایرانی ساغی می است تا از آب جان خودش تا جان خود را در جام هر کسی در مجلس بزم به دست خودش بیفشاند خدای ایرانی خودش در بزم انسان ها است و چنگ می است تا همه را شاد سازد و برقصاند آنگاه این انسان است که با خدا خدمانی و ثمیمی شود و با او شوخی میکند با او بدی و تب... تی... ت... میگوید هشیار شدم ساغی این ایرا... انسان ایرانی است که به خدایش ساغی میگوید خوشوار شدم ساغی دستدار به من باده این دستداری که من به تو دادم یعنی به من هست بده یا مشک سها پر کن یا مشک و سقاده نمی به خوری ساقی به ساقی ما را بده اون باقی والله که غلط گفتم نی نی همه را ماده والله که غلط گفتم نی نی همه را ماده خواهی که همه دریا آب حیوان کرده خواهی که همه دریا آب حیوان کرده از جام شراب خود یک دوره به دریاده این همون آب ظهر است از جام شراب خود یک دوره به دریاده خواهی که مهو زهره چون مرغ فرو دایم که به کف داری یک رت به بالاد یعنی آب یعنی باده را به آسمان بپاش این شوخی و بازی میان انسان و خدا ادامه میابد ساغ یا اینجا یعنی ای خدا چون محس گستی ساغیا چون محس گشتی خیش را بر من بزن ذکر فردا نسیه باشد نسیه را گردن بزن این اشاره به آخرت و جنت اسلامی ذکر فردا نسیه باشد نسیه را گردن بزن سال سال ماست تاله طالع ظهر و ما این ی ای, ای گله ایدلین ایش و طرف حدی ندارد تن بزن عقل زیرک را برا رو پهلوی شادینشون جان روشن را سبق بر باده روشن بزن آنگاه این انسانی که پر از باده یعنی پر از زهره و مشتری پر از رام و فروهر شده است فریاد میزند از بهر من بخر دولی دو از دوول زنان. از بهر من بخر دوهلی از دول دو زنان تا برکنم ز باغ جهان شاق و از بهر من بخر دوهلی از دوول زنان تا برکنم ز باغ جهان شاق و بیخ قم. ما پر شدیم تا بگلو. ما پر شدیم تا بگلو، سااقی ازسطتیز. میریزدن شراب اسراف همچون یم دانی که بحر موج چرا میزند به جوش دانی که بحر موج چرا میزند به جوش از من شنو که بحریم و بحر اندرم تنگ او است و میتلبد موز فراخ بر می به سوی هوا آب را گرم اینجا این در ریختن این آبادی که ساغی خدای ایران در دهان ایرانی میریزد این احساس تنگی از همه این عقاید و افکار خوشیده میکند آری نیایشگاه ایرانی فرهنگ ایرانی دین ایرانی در مسجد و سومعه و محمد نبود بلکه در خرابات و میتده بود که خدایان ایرانی به دانجا تبیید شده بودند صاغی و مطرب که سیمور قرام یا مشتری و زهره باشند پیر و موقان و مقپچه شده بودند که در خرابات مجلس بعض را برای همه می آراستند ما خرابیم و خرابات ز ما شوریده است ما خرابیم و خرابات ز ما شوریده است گنج ایشین اگر چند در این ویرانیم قد خدامون به خرابات همون ساغی و بس. کد خدامون به خرابات همان ساوغی و وس که خدا اوس دو خدا اوس همو را دانیم کد خدامون به خرابات همان ساوغی و وس که خدا اوس خدا اوس همو را دانیم من نخواهم که سخن گویم الا ساوقی میدمد در دل ما زانکه چون نی انبانیم خدا ساغی است که ما را که نی انبان او هستیم می نوازد بوحریره نام دیگر رامیا یا دهره بوده است که هرچه می خواسته است می توانسته است از انبانش درآورد. یا با نای نی نوا با نا نوای نی از نی انبانش هرچه را می خواسته است می آفرده بوهریره بوحریره بوحر سفتیمو به گه داود و ستد دل بهدان سابقه بو دست در انبان داریم اهرمند دیو و پری جمله به جان آشق ماست چون که در عشق خدا ملک سلیمان داریم دین هزارهای ایران تبعید و ترد می شود ولی آنها همه از کتابهای دینی و شریعتی از قرآن و صحیح بخاری و اصول کافی کلینی و کیمیای سعادت قذالی رخت برمیوندند و میروند در قذالیات حافظ و مولوی و عطار و عراقی و سعدی هنوز دل ایرانی در خرابات و در میکده نزد پیر و مخان و پیر و خرابات, خرابات میماند هنوز عشق با آن دارد که خدا را بنوشد تا از خدا مست شود و بروید و بشکوفد و روشن بشود و بینش و خرد شاد پیدا کند دین اصیل ما در ادبیات ما در غزلیات شعرای ما شکل فرهنگ میگیرد بینش حقیقت ما در آنچه شعر و ادب ایران نامیده میشود در غزلیات اطار و مولوی و عراقی و حافظ و سعدی جایی که خرابات و میکده که نیایشگاه و جشنگاه و همون ساقی و مطرب است که خدایان ایرانند خانه کردند. اینکه حافظ میگوید در خرابات مغون نور خدا میبینم در خرابات مغون نور خدا میبینم وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم البته این برای زاهدان و مؤمنان و علمای اسلامی است که جای عجب بود وگر نه هم حافظ میدانست و هم مولوی با بانگ بلند گفته بود که زاه سعادت مرا شرابات است زاه افتاب سعادت مرا شرابات است که ذرات تنم حلقه خرابات است که ذرات تنم حلقه خرابات است آفتاب سعادت همون سیمرغ است واژه آفتاب آف آف آب تاب یعنی تابش آب و از آفتابه هم آب فرو می‌پاشد مولوی میگوید وجود خود من ذرهها و ها و خشت های خرابات است بینی ایرانی به دینسان آغاز شد که روشنی پیایند آمیختن آب با تخم است انسان تخمی است که در آمیزش با آب که شیره و ابشره موجودات جهان است که همان خدا باشد دینش و روشنی ایجاد میگردد چیده و عبشوره همه موجودات جهان باده است و انسان را مص می لبریز از عشق می خرابات برای مؤمنان اسلامی زشت ساخته شده بود محل فساد اعم از قهوه خانه و قمار خانه و میخانه بود جای بود که عراجل و اوباش برای تربدران می میگذرانیدند. جشقا و نیایشگاه ایرانی مانند همون شاه پریانی که در پیش از آن سخن رفت که ابلیس شده بود جایگاه همون جایگاه جشنگاه و نیاشگاه و ایرانی جایگاه عراضل و اوباش شده بود یعنی مرد جایگاه مردم ایران شده بود و طرب و جشن کار عرازل و اوباش شده بود ولی این دو اصطلاح خراب و خرابات معانی دیگری داشتند. که هنوز که همه زشت و تباه ساخته شده بودند جایی که آب یعنی شیره جهان یعنی خدا روان بود تخم انسان شاد میشد نیروی میشه اصالت خود را می آد از اون روشنی و بینش فرامیتابید در کردی هنوز خراب که همون خراب باشد به معنای جریان سریع آب است خرم در کردی به معنای رگبار باران است خراوا که خرابا باشد به معنای غروب است که این گاه زمانی این همانی با رام یا زهره دارد غروب تنگ غروب سر شب از آن زمسارام است. است خور که پیشوند که خورشیده است معنای خونابه داشته است ایرانیان بر آن باور بودند که ماده اصلی جهان آبخون یعنی خونابه بوده است خورشید هم خورشید خرشید به معنای رگوار آب یا افشوره نی از نی است شید جید نی بوده است خور این که به معنای تابان ترجمه می این معنای دومش است یعنی جید و شید و رام جید یعنی رام نی نباست روشنی خورشید از آب است این ایده اولی ایرانی بوده است که روشنی از لطافت و نرمیس بعدش روشنی از خورشید تبدیل به شیر شد تبدیل به شیر که شد یعنی تیغ و خنجر شد روشنی در اول معناش روشنی از آب بوده است ها خور را به درخت تبریزی یعنی سپندار میگویند سپنداری که اسم دیگرش سپندادار است یعنی چی؟ یعنی درخت سپنده یعنی درخت سیمر درخت تبریزی درخت سیمرغ است نام دیگر این درخت در کردی خوجلی یعنی درخت خاجه است خاجه نام سیمرغ بوده است و همینطور در شکل تلفظ خراب این تفاوتی ندارد خور ولی در, در شکل تلفظ خراب و خرابات خره که این خر که اول خرابات میاد هیچ ربطی به حیوانی که ما خر مینامیم ندارد حتی خر هم سازی و خدا و نام خدای ایران است چون که این نام خدای ایران بوده خدای من و شما خر شده است ببینید چه توهینی که به فرهنگ ایران کردن که نه تنها خدا است بلکه خر دجال است چون دجال که دوج آل باشد یعنی یعنی آل یعنی سیمرغ کثیف یعنی سیمرغ ناپاک اون ببین این اینها این خدای ما الله نیست خر دجال است و قائم یا مهدی موعود میآید که این خر دجال رو یعنی این خدای ایران رو باز بکشد اینها همه توهین به ملت و فرهنگ ایران است این خر دجال در بوندهش خر سپانام دارد چون سیمرغ مانند سپنتا یعنی سه مرغ یعنی سه زهدان، سپنتا، این سدهای یکتاست. این خر سپا را هم در بندهش زشت داختن این خر سپا در آنجا در سه سوی بدنش هر طرف سه تا دارد و در فراز سرش یک شاخ با هزار نی دارد به عبارت دیگر سراسر وجود این جاندار موسیقی و ترود و طلب است. آمدن این واژه ها را با اندکی تحریف به خایه و آلت تناسلی یعنی اصل شهوت تبدیل کرد. وقتی قلم دست دشمن افتاد خدای زیبا و عشق ایرانی تبدیل به مجموعه آلت تناسلی و اصل شهوت می شود خدای زیبا و خدای عشق ایران خر دجال می شود ولی با وجود همین زشتسازی ها آواز این هر دریا را به جوش می آورد و همه ماهیان دریا را می میکنند یعنی چی یعنی با آهنگ و نبا میافرنند و ما و ما انسان و انسان ماهی است که در آب خدا در دریای حقیقت زندگی می کند و همیشه تشنه آب یعنی جوهر گیتی تشنه شناخت گیتی هر که چون ماهی نباشد جوید و پایان آب هر که چون ماهی نباشد جوید و پایان آب هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند بحر است همچو دایه ماهی چو شیرخواره قیودت طفل مسکین گریان شیر باشد وان ماهی که داند کن به طالب او پایش روی نخوت فوق اسیر باشد او ایز بس عنایت اون ماهی از سلطان اون بحر بی‌نهایت است او را وزیر باشد این است که ایرانی که تخم اصیل روینده بینشه همیشه نیایشگاه است همون خرابات است و همیشه فریاد برمی دارد که تا قیامت ساقی باقی عشق یعنی رام تا قیامت ساقی باقی عشق جام برکف سوی ما آینده باد جام برکف سوی ما آینده باد بلبل دل تا ابد سرمست بود توتی جان هم شکر ینده بود تا ابد پستان جان پرشیر بود تا ابد پس پست پستان جان پرشیر بود مادر دولت ترپزا باد یعنی مادر سعادتی کسی مر باشد مادر دولت ترپزا باد دوستان با این سخن سلسله سخنرانی های دوازده ما پایان میپذیرد و امیدوارم که پس از سفری شدن دو ماه از سر آغاز به گفتارهای بعدی بکنیم خوش و خورم بسیار سفاسگذارم وای پروفسور جمالی برای این پرنامه بسیار پربار در طول این دوازده جلسه و امیدوارم که به زودی صدای گرم شما رو و دانش بیگران شما رو, رو روی خط برای شمال دامون داشته باشیم خوش و خورم باشیم سفاسگذارم